فصل ششم شما نه که دارد میمیرد و احساس در درماندگی دست از سرش بر نمی‌داشت در اعماق جار خود یقین داشت که در حال مرگ است اما نه تنها به این یقین دسته می‌کرد بلکه این حال را اصلا نمی‌فهمید به هیچ روی نمی‌توانست از آن سر در آورد مثالی را که در کتاب منطق کیتسبتر برای قیاس خوانده بود به این قرار که کایوس انسان است، انسان فانی است، پس کایوس فانی است، در تمام عمرش فقط در مورد کایوس درست شمرده و هرگز خود را در دایره شمول آن نگذاشته بود. آدم بودن کایوس جنبه کلی داشت و در فانی بودنش هم حرفی نبود. اما او که کایوس نبود و آدم بودنش هم جنبه کلی نداشت، او آدمی خاص بود و همیشه حسابش از آن جدا بوده. او برای مادر و پدرش، برای والودیا و میتیا و دایش، برای همبازیان و سرچیشان، و بدها برای کاتینکا وانیا بود. وانیایی با شادیها و اندوهایش و شوری از کودکی تا جوانی در هر دوران کیفیت خاصی داشته بود. مگر کایوس بوی چرم توپ کوچک نونواری را که وانیا دوست داشت میدانست چیست؟ مگر کایوس، دست مادر جانش را مثل وانیا می بوسید مگر چین های دامن ابری شمین مادرش اینجور مثل مادر او خشخش می مگر کایوس بر سر پیراشی های حقوق سرکشی کرده بود مگر کایوس عزیز کردی همه بود مگر کایوس می توانست جلسات دادگاه ها به خوبی او اداره کند ایوانلیش به خود گفت البته کایوس فانی بود و البته می بایست نمیرد ولی من و نیا ایوان ایلیش با این همه احساس ها و اندیشه ها برای من مسئله شکل دیگری پیدا می کند مگر ممکن است که من هم مثل همه بمیرم چون این چیزی خیلی وحش تنگیز می شود. احساس دل ایوان ایلیش اینجور بود و خود می اگر قرار بود که من هم مانند کایوز مردنی باشم می بایز خودم به این حال آگاه بوده باشم باید به دلم براز شده باشد حال که هیچ ندای درونی به گوش دلم نرسیده است. من و همه دوستانم می بایست فهمیده باشیم که شباهدی به کایوس ندارین؟ نه نمی شود. هیچ ممکن نیست. ولی چطور ممکن شده است؟ چطور؟ هیچ سردر نمی آورم. سردر نمی آورد و سعی می کرد که این را همچون فکری مجازین و نادرست و بیمار از ذهن خود دور کند و افکار دیگری را که درست و سالم باشند جایگزین آن اما این فکر که نه فقط فکر کنگاری واقعیتی بود همواره به ذهنش باز میگشت و چلوش سر بلند میکرد افکار دیگری را به نوبت به ذهن خود فرا میخواند تا جای این افکار را بگیرند و امید اینکه در آنها تکیهگاهی بیابد میکوشید برشته افکاری بازگردد که در گذشته فکر مرگ را فرو میپوشاندند. اما عجیب این بود که همه افکاری که در گذشته تصویر مرگ را پشت خود پنهان می کردند و کدر می ساختند یا لابود می کردند. دیگر چون این اثرهایی نداشتند ایبانه در این اواخر بیشتر همه خود را بر این کوشش می که احساسهای گذشته را که فکر مرگ را فرو می زنده کند گاه با خود می گفت همه خود را وقت فکار اداری خواهم کرد مگر این کار در گذشته زندگی من نبود و به دادگاه می رفت و هر گونه تردیدی را از دل خود می زودود. سر صحبت را با دوستان اداریش باز می کرد و به عادت قدیم با نگاهی اسیر فکر به جمعیت می و با دو دست فرو داشت به دسته های کرسی قضاوتش که از چوب بلوت بود تکیه می داد و مثل معمول به جانب قائم مقام خود خم میشد و با او پچ‌پچکنار پرونده را پیش میکشید و بعد ناگهان سر بلند میکرد و راس مینشست. از جملات معمول را بر زبان می‌آورد و بازپرسی را آغاز می کرد اما ناگهان در میان دادرسی درد پهلو بیکوچک‌ترین اعتنا به این که دادرسی در کدام مرحله از کار خود یعنی مکیدن و جویدن اندرون او را شروع می‌کرد توجه خود را بر آن متمرکز می کرد و می که بر آن چیره شود و فکر آن را از ذهن خود براند اما آن به کار خود ادامه می داد و نزدیک می و راست جلوی او قرار می گرفت و در چشمانش زل زد ایوانی از وحشت خوش می شد برق زندگی چشمانش می رفت و با خود می گفت خدا فقط آن است که حقیقت دارد؟ و همکاران و کارمندانش با تعجب و اندوه که او این قاضی زبردست و باریکندیش گیج می شود و اشتباه می کند. او تکانی به خود میداد و می که خود را در اختیار آورد و هر طور ممکن بود جلسه دادرسی را به پایان می و به خانه باز میگشت با یقینی دردناک به اینکه دیگر کار غذاوت نمیتواند مثل گذشته را که او میخواهد از او پرهان دارد و کار دیگر قادر نیست که او را در پناه خود دیرد و از درد نجات دهد و از همه بدتر اینکه آن توجه او را نه به این منظور به خود جلب کرد که او کاری بکند بلکه به این منظور که او ایوان ایریچ را وادار کند که به او نگاه کند راست در چشمانش خیلی شود و بی که کاری بکند و آن چشم دوزد و سخت رنج ببرد ایوان ایریچ به منظور نجات از این حال میکوشید. تا ها و حفاظ های دیگری به و این حفاظ ها را که مدتی کوتاه گفتی مفید نیز بودند و او را نجات می‌دادند دادند میافت. اما پس از اندک زمان این حفاظ ها که از میان برداشت شوند گفتی شفاف می و مثل این بود که آن از سپرانها می میگذشت و به او دست می و دیگر هیچ چیز نبود که او بتواند خود را پشت آن از او پرهان کند در این نوا گاهی به تالار پذیرایی که خداراسته بود وارد می شد. همان تالار پذیرایی که در آن از نردبان افتاده بود و در راه آراسر آن چنان که به نظرش به تلخی موسک میآمد جان را فدا کرده بود. زیرا میدانست که منشه بیماریش همان ضربه بود. پاری به تالار پذیرایی وارد میشد و میدید که میزی که رنگ لاک و الکلی داشت زخمی شده است. به تنبال علت آن میگشت و میفهمید که آزین برونزی آلبوم عکس است که لبه برگشته است. آلبوم را که بسیار نفیس بود و خود آن را با علاقه بسیار فراهم آورده بود برمی داشت و از شنختگی دخترش و دوستان او به خش می آمد. زیرا یک جایش را پاره کرده و جای دیگر عکس ها را برداشته و وارونه باز گذاشته بودند. با دقت بسیار عکس ها را به نظم می آورد و لبهی برگشته آزین برونسی را صاف می کرد. بعد به فکر میافتاد افتاد که آلوب و همه آن بسات را به گوشه دیگر کنار گل ها ببرد پیش خدمت را صدا می کرد زنش یا دخترش به کمکش می و با فکر او موافق نبودند و دلیل و برهان می که فکرش درست نیست و بگو مگو در می گرفت و اوقاتش تلخ می شد اما راضی بود زیرا اینها همه باعث شده بود که از آن فارغ شود اما وقتی میخواست خودش میز را جابجا کند زنش میگفت بگذار این کار تون نیست باز یک بلایی سر خودت میآوریم و دوباره آن برقی میزد و از پشت حفاظ ظاهر میشد و پیش چشمش میآمد اما او هنوز امیدوار بود که دوباره پنهان شود با این همه توجهش اسیر پهلویش شده بود آن همچنان در پهلویش نشسته بود و اندرون او را میمکید و میجوید و او دیگر نمی توانست آن را از یاد ببرد و آن را آشکارا پشت گلها می دید که به او زل زده است پس فایده این کارها چه بود؟ حقیقت این است که من بالای این پرده گفتی ضمن حمله به جش دشمن بخواه کفتادم یعنی براستی هم اینجور بود چه وحشت ناکوچه مخانه چطور ممکن است؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟ ولی جز این هم نیست به اتاق کارش رفت روی کاناپ دراز کشید و دوباره تنها شد دوباره با آن خلوت کرد و نمی کند فقط می توانست به او نگاه کند و سرد شود